حکایت یکی از وزرا پیش زنون مصری رفت و همت خواست که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش امیدوار و از عقوبتش ترسان زنون بگریست و گفت اگر من خدای را عز و جل چنین می پرستیدمی که تو سلطان را از جمله صدیقان بودمی، گر نه امید و بیم راحت و رنج، پای دربیش بر فلک بودی، ور وزیر از خدا بترسیدی، همچنان که از ملک ملک بودی،